فصل پنجم معبودان باطل خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا بعضی از شما سوال بکنند که چرا ما در درسای جهان بینی درباره معبودان باطل صحبت میکنیم علت اساسی چی است که اگر انسان ویروس یا میکروب نشناسه انسان نمیتونه که خود از این میکروبها ها وقایه بکنه مثلا شما کامپیوتر دارین در کامپیوترتون وقت میتونین که درست کامپیوتر استفاده بکنین در صورت میتونین که از این کامپیوتر درست استفاده کنین که شما ویروس بشناسن آنتی ویروس اینستال بکنین و با اینستال کردن آنتی ویروس شما از شر میکروب خدا خلاص میشین ایناده اینمی قسم که ما میخواهیم که از شر میکروب خود خلاص بکنیم باید ما در مسائل اعتقادی بفهمیم که مشرکین و کسایی که قرآن ازیم و شان را بد گفته و گفته که اونا کافر هستن یا مشرک هستن یا از دین برامدن صفات بد داشتن یا ما ما شما باید بشناسیم از این خاطر ما اول معبودای باطل میخونیم معبودهای باطل چی مانای؟ یعنی کسایی که اونا معبود نبودن لکن مردم اونا را به صفت معبود خود گرفته بودن عبادت میکردن یا را چرا بشناسیم؟ به خاطر از این بشناسیم که اتونه که ما یک کار را بکنیم خود ما فکر بکنیم کار خوب است او کار خراب باشه و سبب شود که ما را گمراه بسازه این حال میبین سر باطل که معبودای باطل چی هستن و چند قسم هستن و هر کدام از ایره علایده علایده تشریح میکنیم محبودهای باطل اول قسم که محبودهای باطل هستن ایره میگن که محبودهای باطل است تکوینی اصلا تکوینی چی مانه؟ یعنی محبودهای باطل که میگن اینا در عالم هستی تصرف دارن عادت مشرکین چی بود؟ موشریکین چی مشکل داشتن عادت مشرکین ای بود که اونا بعضی از مشرکین قریش میگفتن که انسان ها میتونه که در جهان تصرف داشته باشند، میتونه که در آفتاب تصرف داشته باشه میتونه در محتاب تصرف داشته باشه میتونه در سیاره ها تصرف داشته باشند. بنابراین اگر یک کس بوده که یک مخلوق میتونه که آفتاب و تغییر بده یا محتاب و تغییر بده یا ستاره را تغییر بده یا ستاره تو آفتابیس او آتیشی برات برد بسازه یا آتیشی او را آبی بسازه یا مثلا اینمی قریمار اینمی منطقه را یک مخلوق نگاه میکنه اگر اون انسان نباشه ایشار کلش خراب میشه در حقیقت اینار را معبودان باطل تکوینی خود گرفتن پس معبودان باطل چیست اگر کس اقیدن نماید که یک مخلوق میتونه در نظام هستی جنت دوزخ بسازه دوزخ جنت بسازه یا زمینه تغییر به آسمان بسازه آفتاب دا جای محتاب ببره محتاب دا جای آفتاب ببره اگر کس اما اگر قیل داشته باشه که فلانی نفر ای کارها را کردن میتونه اینمی نفر معبود باطل چی خود گرفت؟ معبود باطل تکوینی چی؟ تکوینی فامیدید یا نه؟ خب قسم دومش چی هست؟ قسم دومش از معبودان باطل طاغوتی معبودان باطل تاغوتی چی موناد تاغوت و مانای سرکش است یک تعداد انسان های سرکش مثل فرعون یک تعداد انسان های سرکش مثل فرعون چی میکنه ادعا میکنه مگه انا ربکم رب الاعلا من خدای تان هستم من براتون قانون میسازم من براتون نظام میسازم ما بر شما سیستم زندگی رو جور میکنم شما باید عظمت پیروی بکنین شما باید به من رکوع بکنین شما باید برای من سجده بکنین اینال اگر کس بیش اینی فرعون یا پیش اینی انسان فرعون صفت رفته برای زو رکوع و سجده میکنم میگه بله تو هستی که همه چیز به اختیار تو هست و تو میتانی بر ما تو خدای ما باشی تو رهبر ما باشی تو ما زندگی بیتی تو مرگ مارن این تاغوت مثل فرعون واره اگر این را کس پرستش میکنه و از این مطابقت میکنه این معبود باطل چی شد؟ تاغوتی شد قسم سیمون معبودان باطل تشریعی است. تشریعی چی مانون؟ اصلا تشریعی قانون میگن معبودان باطل قانونگذار در معبودان باطل قانونگذار قایده چی هست؟ ما مسلمان ها و تمام موحدین عقیده دارن که صلاحیت حلال و حرام فقط الله جل جلوه داره. به هیچکس هیچ کسی نمیتونه که حلال حرام بسازه و هیچ کسی نمیتونه که حرام حلال بسازه مثلا شراب حلال است یا حرام؟, حرام؟ شراب حرام است. ایره کی حرام ساخته؟ الله جل جلوه اینال آیا کدام پیغمبر یا دوست خدا یا دشمن خدا این حق داره که بگه شراب حلال است اینال این سلاحیت ای ای نداره اگه کسی امی سلاحیت و یک مخلوق بته چی میشه این مخلوق چی جور کرده این مخلوق معبود خود ساخته خدای خود, خود گرفته گفته تو بر قانون بساز ببینید در قصه موضوع چیز چی میگه در قسمت یهود و نصارا در قسمت نصانی ها آیت قرآن است میگه اتخذ گرفتند احبارهم اتخذ احبارهم گرفتند احبار خود را و رهبانهم و رهبانای خود را عرباب خدایان من دون الله و غیر از الله یعنی به غیر از الله اینا کی گرفتن؟ سعی کنیم احبار چی میگن؟ احبار جمع حبر است حبر اصلا در زبان عربی رنگ میگن و علماء اونا باز مجازن حبر میگفتن چرا حبر میگفتن؟ چون علماء زیاد قلم و رنگ استفاده میکردن پس اینا را حبر میگفتن جمع حبر چی میشه؟ احبار روحبان راهب و راهبه مسیحی یک تیداد اشخاص دارن که میگن یا رهبان هستن راهب هستن کی هستن اینا که رهبانیت میکنن میگه رهبانیت بمانای گوشنشی نیست اینه کسایی هستن که ترک دنیا کردن ترک کردن ازدواج نمیکنن به خانه زندگی نمیکنن میره قرار در مکالیسی ها زندگی میکنن یا رو اونا راهب میگن بعضی دخترها سور راهبه میگن در حالی که در دین مقدس اسلام موچدر را به نام راهب و راهبه نمیشناسیم خداوند متعال میگه که مسیحی ها چی کردن علمای خدا احبار یان یعنی علما و راهبان یان یعنی زاهدان زاهدان خدا علما و زاهدان خدا چی گرفتن ارباب جمع رب است یعنی یار رب خود گرفتن خدای خود گرفتن اتخذو احبارهم هم و رهبانهم هم ارباب من دون الله احبار رهبان خدا چی کردن؟ مثل خداوان واره بر خود گرفتن رب بر خود گرفتن من دون الله و غیر خداوند یک صحابی مبارک عدی ابن حاتم، ای در اصل خودش مسیحی بود ای که گفت ای پیغمبر خدا ما خو احبار خدا یا رحبان خوده پرستش نمیکردیم ما خوران را پرستش نمیکردیم پس چطور قرآن عزیبوشان برای ما گفتن که اینا احوار رهبان خدا رب خود گرفتن پیغمبر شدن برشان گفت که وقتی که اونا یک چیز را حلال میکردن شما میبتین حلال است. خداوند گفته که این چیز حرام است، لکن راهب یا عالمش برش میبتی حرام است. باز از اون پیروی میکردن پس اینال وقتی که شما برای یک مخلوق اجازه دادین برای بر پاپتان یا برای کشیشتان که تو پاپ یا تو کشیش برای ما حلال بساز یا حرام بساز یا بگو چی حلال است یا چی حرام است در حقیقت اگر یک انسان صلاحیت داری که تو انسان حق داری برای ما حلال و حرام بسازی انسانا چی خود ساختی نفر؟ معبود خود ساخت معبود خود اناله. یک انسان موحد و یک تا پرست صلاحیت حلال و حلال را پیش خداوند کی داره؟ در اسلام خداوند. خداوند جلو جلو داره بناهن نه احبار و نه رخبان هیچ کسی حق ندارن که چی بکنن؟ که بر کس یا حلال بسازه یا حرام یا ور صلاحیت بده که بر ما جایز و ناجایز چی کو؟ جایز و ناجایز تعین کو. بناهن ما مسلمان ها چه خیز مقیده داریم؟ چه خصوصیتی داریم؟ <تصفيق> <تصفيق> با سلمان آن چه خصوصیتی داره؟ سطح؟ سلاحیت حلال و حرام ها کی دارن؟ خداوند. الله جلال جلو داره. اگر یک کس برای یک مخلوق اجازه بده، سطح؟ یک کس برای یک مخلوق اجازه بده؟ باید که تو بر من شراب بگو که حلال است یا حرام. تو حق داری که برای من می شربه. اگر تو گفتی حلال است، حلال است. اگر تو گفتی حرام است، حرام. باز ای چیش میشه؟ معبوده؟ معبود تشریعیه. معبود باطل تشرییش مشه، آفرین. بنان معبود باطل تشریعی کی است که اگر یک نفر کس راه عبادت میکنه که برادر صلاحیت چی رو بتن؟ صلاحیت حلال و حرام و جایز و ناجائز. صلاحیت حلال و حرام کی داره؟ الله جلال خدا خداوند داره اگر یک کس دیگه صلاحیت برش بدی او چی میشه معبود باطله تشریح تشریح میشه اینا حالا وقتی گفت اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله گرفتن اینا احبار و رهبان خدا رب گرفتن با غیر از خداوند چرا یارا یه گفت به خاطر که اینا چی میکردن برای احبار به برا علمای خود برای رهبان بر راهبای خود صلاحیته چی را حلالو حرام میشد با میدونی یعنی معبودان باطل تشریره واضح است یا نه خب اینال قسمه دیگه معبودان باطل چیست معبودان باطل ها؟ تقربی تقرب چی رو یعنی نزدیک کردن سعی کنید مشرکینه وقتی که فرسان میگفت تو کی ره عبادت می کنیم میگفت Allra زمین و آسمان کی پیدا کردم؟ میگفت الله میگفتی خید تو که الله را عبادت می کنیم چرا چون بودها را عبادت می یک بود بود نامش بود هبل یک بود دیگه بود نامش لات یک بود دیگه بود نامش بود منات خب میگفتی چرا این عبادت میکنی؟ اونا میگفتن که ما اینا را به خاطر ازی عبادت میکنیم ما نعبوده هم ما اینا را عبادت نمیکنیم الا مگر لیو قربونا الله تاکی ها ما را به خدا من چی کنن؟ نزدیک بسید مشکل اساسی از یاده چی بود؟ مشکل از این اساسی دریا که یار مشرک ساخته بود ای بود که مشرکین خداوند جلد جانه رو و پادشا تشبیه می کردن آیا ما می تونیم خداوند متعال و پادشا تشبیه کنیم؟ تشبیه کردن نمی تونیم اما اینا تشبیه می کردن می گفتن چی قسم است؟ می برادر وقتی که من پیش پادشا میرم روم پیش پادشا می گفت من وقتی که پیش پاتشا... کوتے سانگی دا ربا کوتے سانگی اس کوتے سانگی کوتے سانگی والا بھو بخشے بدرف خواہش مکر میں انشرت سے جمودین ابو نیدی دی مرکز پخش ورنا شری سی ہیس میں لے میگی بلے بلے بلے ہاں ان اول والدس چاب مرکز کتا فروشی ہے کوولا مونٹیس تشکر بدرف وسط دو هم که اول فراهم نشه تو انتشارات سید جمردینی افغانی، اولین و بزرگترین مرکز پخش نشریه سیدی دی‌وی‌دی، کاتای تیپی، کتاب و مجلات اسلامی در شهر کابل میباشد. پادشاه میرو پادشاهو جواب ما رو قبول نمی کنه، گوش نمیگیره. خایما بر ها چی قسم خودا نزدیک کنم؟ میگفت میرم پیش ازینی نفر سکرتر پادشاه است. اینی نفر رئیس دفترش است. اینی نفر مثلا مشاورش است. اینی نفر دیگه کس از قومایش است اینی از خودگیاش است من اینیا را بر خود واسطه گرفتم تا یا مرا به پاشا برسانند به پاشا مرا چیکونن؟ قریب کنن گفت انال من شرمنده استم روی سیاستم بیچاره هستم خدا گپای مرا قبول نمیکنه پس من مجبور هستم راستن کی برم؟ پیشی اینمی شخصایی که یا به خداوند نزدیک هستند چرا میگپین اینمی لات این منات اینی بوتاک یا کلشون دوستای خداوند بودن در زندگی خود، با دربار خداوند نزدیک بودن ما ببینیم پیش بنده هایی که به خدا نزدیک است، تا که اینمی بنده های به خداوند ما را به خداوند چی کنه؟ نزدیک بسازن. از این خاطر میوف که ما نه و هم ما اینا رو عبادت نمیکنیم الا مگر لیقربونو الالله برای ازی که اینا ما را به خداوند چی بسازن؟ نزدیک و قریب بسازن. خداوند متعال در جواب از چی گفت؟ خداوند مطال در جوابشان گفت که اول خداوند مطال جل, جل به نیاز است کل مردم پیش خداوند رجوع جو بکنن سر ازی ها باید چلیپا بکشی گفت الله سمد خداوند به است مثل ازی پاچه نیست که محتاج بسته کرده رئیس دفتر یا باشه خداوند به است الله سمد گفت خای که ما اینجا که هستیم با خداوند چه خیزم خدا نیزی گفت اذا سأل کعبه عني ساکن اذا اذا سأل کعبه عني فايني قريب خداوند متعال گف ارگا سوال بکن اذا هر وقتی سؤال که سوال بکنه تو ای محمد صلی الله علیه و سلم ای بنده های من نه بنده های بت نه بنده های آتش نه بنده های بت پرست گفت وقتی که بنده های من عنی در مورد من سوال بکنه و انی قریب من به بنده خود چی هستم نزدیک هستم الان وقتی که خداوند بر ماتون نزدیک است و پس در آیت شریف دیگه میگه که خداوند نزدیک است به انسان من حبل الوری از چه که نزدیک است <تصفح> از شاهرگ گردن که برای انسان نزدیک است شاهرگ گردن تو در کجاست تو بخشه نشون بده عمیرگ <تصفح> کلان اساسی خب انا لو خداوند برای ما از شاهرگ گردن که چی است <تصفح> نزدیک است صحیح است نه وقتی که خداوند از شاهرگ گردن کرد بلده تو تو تر است این حال وقتی خداوند نزدیک هست برای از چی کردن؟ شاره از شاره از که گردن کردن پس این ما من با وزاتی که قریب هست و پیش از او برم یا پیش و کسی که دور است. <تصفيق> اما مشتیکین آده چی بود؟ این دوست خداس هوبل، این بسیار آدم خوب بود آلما مجسمی از این جور کردیم این ما را به خدا چی میکنه؟ <تصفيق> خداوند گفت که من ازدیک هستم بر تو ظالم الان ما برای تو نزدیک هستم. تو نصف شب وضو بکن. نماز بخوان. وقتی که مشکل داشتی به بارگاهی من رجوع بکن. مستقیمن. الان تو چیزی رو داری که بری پیش یک شخص دیگر؟ اینال ما مسلمان ها عقیده داریم که الله جلاله ها از هرکس که در بر ما نزدیک نزدیکتر است. و از هرکس که در بر ما مهربانتر است. چیست؟ مهربانتر. اینال وقتی که یک نفر بر ما نزدیک باشه. و بسیار مهربان باشه ما برای از اون مهربان و نزدیک بریم یا بریم پیش که معلوم نیست که چقدر مهربانی دارن مهربان پس پیش خود خداون نمطالبه از این خاطر این نظر مشرکینه که گفته بزن که ما نعبود هم الا لیو قربون ایلالله از ظلفا که نه نه نه نه هم غلط ای هست این قسم عقیده و نظر کس این نظر مشرکین قراش بود نظر مشرکین قراش رد کرد و گفتی گفت شما غلط است. معبودان باطل دیگه چی هستن؟ تعددی معبودان باطل تعددی چی مانه؟ یعنی تعدد از زیادت عدد یعنی عدد زیاد عدد زیاد چی مانه؟ مسیحی ها میگفتن که سه خداست. خدا خدای پدر پسر روح القدس ما پدر جمع پسر جمع روح القدس میگه یک خدا متعدد و بعضی میگن که این پسر سه روز مرد این حالی مثلث از یو که سه زاویه داشت یک زاویه چند روز مرد بنا بر عقلی از اونها خداوند سه روز یک زاویه نداشت معبودان باطل تعددی چی مانا که کسای چند معبوده پرستش میکنن مشرکین خورش سیصد و چند بطه سیصد در اطراف کهبه مانده بدن مشرک بودن در فارس که بود در زمان قدیم بگفتن که خدای خیر است و خدای شر است و خدای نور است و خدای ظلمت است خدای تاریکی است خدای روشنی است انالو اینی کسایی که بغیر از ذات یکتا راه دگار عبادت میکنه یا چی میشم مشرک هستن پس نباید بغیر از الله جل جلاله ها با الله جل با دیگه ما سجده بکنیم یا سر خب، معبودان باطل دیگه چی است چی حیوانی را خود بیفامین که بعضی کسا حیوانات رو پرستش میکردن مثل گو را پرستش میکردن مثلا فیل پرستش میکردن گوه پرستش میکردن یسه. معبودان باطل نباتی چیست که بعضی کسا نباتات هست بعضی کسا درخت هم خدس قرار میدادن میدفتن که اینی درخت کس اگه درخت هم ها بگردیم یا نبات مثلا میگفتن که بطه طلسی اگر اگر بکنیم. ایری بطه ها را که پرستش میکن اباتیز بعضی کسا های دیگه هستن که معبودان باطل چی بود نجومی آفتاب مختاب و ستاره رو پرستش میکنن. بعضی کسا های دیگه بود که معبودای باطل دیگه پرستش میکنن که با چی هستن اشیا مثل سنگ مثل چو مثل این چیزهاره. پس اینال یک مسلمان که هست غیر از الله جل جاله هیچ کسی دیگه را پرستش نمیک خو؟ شما اتا پر سر تخت هم هر دوی تا شما سوال میکنم شما برای ما جواب بگوید خو؟ معبودان باطل چند تاست دشری کن اولش تکمیمی سر... آه... که مثلا در آرامی هستی وقتی که یک چیز دیگر دارم غیر از این پرستش میکنم و میگه که بعضی انسان ها میتواند که دارم هستی تصرف داشته باشد تاغوتی چی را میگن؟ تاغوتی مثل که برام میگه تکلیقا نه خدای تمام مردم هستم خداوند تمام مردم هستم و بعد را باید اینا نمارد این رقم کسایی که مثلا میگه من پرستش کنه میشن. تو تاغوتی میشه خب تو بگو که تشریعی چی را میگه؟ فضانده فرضانده نه باطل تشریه مبعودی رمه کی مثلا او چه درسه راهبا و دیگه راهبا را رو مثلا ولا مثلا صلاحیت ميدن برای چی صلاحیت ميدن کی مثلا چه چیز چه چیز حلال بشون حرام بگردن حرام و حلال بگردن جایز و ناجایز برایشان امیره صلاحیت تو بگید تقربیه چی رمهگه تقربیه نه چو او میگم یکم مگه ما با از تمام چیز کنه درازو با پیشه بتامریم تاکمه رو با خداوند چی بسازن؟ رزیک تر میسازن. حریپ بسازن. تو بگو تادیدی چینو مگه؟ مثلا که برای یار خدا, خدا خدای واید نمیگه مثلا چند نه خودش مثلا مسیام کی عیسی علی سلام دیگه پدر بود پسر بود و خدا ایوانی چینو مگه؟ ایوانی اون از حیوانات رو پرستش میکنن میگفت که در جای خدای ما میباشه. نباتات نباتی چی تو؟ نباتی مثلا واسه بعضی نباتات رو پرستش میکردن. نجومی؟ نجومی اونها از, از آفتاب مهتاب و, و اشیای دیگه مثل سنگ چوب و غیره درست هستنی؟ فاهمی دینیدن؟ تو بخی بگو تو برما بگو که معبودان باطل تکوینی مقصدش چیست؟ حالا تکوینی و یعنی کسایی در این جهان هستن که برای ما میتانن مهتاب آفتاب و تغییر بتن در اون تصرف بکن برای سر روشت ما یک چیز رو تعیید میکنن خب، تو بگو که معبودان باطل تعدودی چیست بسیمال رحمان الرحمن الرحیم. معبودان باطل تعدودی معبودان است که تعداد زیاد کسانی بودن که یک تعداد زیادی معبودان رو را... پرستش, پرستش, پرستش میکن بس چه تو بگو قربان جان معبودان باطل تخربی اس درک کنه بود بوت تو به خدا نزدیک شو. به اسد تو معبودان باتل تشریح کن اسلام و رحم معبودان باطل تکوینی معبودانی هستند که مثلا کسی انسان مثلا فکر کنه که او انسان مثلا آفتاب و ماهتاب تاثیر بر اسو داره و این مثلا انسانی که اونورا به واسه معبود باطل به معبود چی میکنه اما معبود تکوینی است معبود باطل تکوینی است خب معبود باطل دیگه چی چیز تاغوتی منظور از تاغوتی چی است مابد کسی است که او بزور و ستم استاد کسای دیگر مجبور به مجبور که او را پراسش بکنن مثل که فرعون بکست مابد بدر تشریع مابداری هستند که صلاحیت حلال و حرام اگر ما ب... سعی کنید یعنی قسم بگیم گوش کنید بخاطر که درس درست, درست بفهمید چه قسم باید بگویید بگوییم اگر ما... اگر کسی برای یک انسان صلاحیت بده که حلال و برش حرام بسازه حرام و حلال بزازن رو معبود باطل چی خود ساختن؟ تشریح خود ساختن. معبود باطل دیگه چی هستن؟ تقروبی. اگر کسی بگه که من میرم پیشینی بت‌ها یا پیشین انسانها این انسانها باز مرا به خداوند چی بزازن؟ نزدیک بزازن. باگیر معبود باطل چی میگن؟ تقروبی میگه. یعنی مرا به خداوند نزدیک بوش. شما دو نفر بین؟ تو بر مابود که معبود باطل تعددی. منظور از معبودان باطل تعددی چی نمی که غیر اگر کسی چند معبوده پرستش بکنه هم. یا سه یا چهار یا پنج یا 20 یا 120 بیست این معبودان باطل چی خود ساختن؟ تعدادی خود, تعدادی خود ساختن. تو اشتباهه. خب باالوزی چی هستن معبود باطل؟ معبود معبود باطل حیوانی. تشریکو بعد اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله اول بعد گفت که معبود خود خداوند جل جلاله است و بعضی کسایی از در دنیا که حیوانات رو پرستش میکنن و حیوانات مثلا گوساله گاو و غیره و غیره حیواناتش که اونها پرستش میکنن اونها معبودان باطل حیوانی حسابن دیگه چیز بعد از اون بعد از اون معبودان باطل نباتی بعضی کسات درخت ها مثلا بوته گل یا یه اون چیزای پرستش میکنن که معبودان باطل نباتی گفته میشه خب معبودان باطل نجومی چی را میگن؟ نجومی معبودان مان... باطل ما مردم سیاره مظدما آفتاب، و غیره چیزا را میکنن که به نام باتل باطل نجومی یاد میکنن. خب وا دیگه اشیاس که اشیار... ما مردم سنگ چوب آله مثلا یک کس اشیا سنگه مثلا باربندکش تو خود یک دونه سنگه آویزون میکنه یک مورګه که میگه اینو از بالا نگاه میکنن. این امیره به خداوند شریک ساخته همین که. چون اولاد خدا به خداوند تسلیم نمیکنه با چی تسلیم میکنه؟ به مورا. به مورا تسلیم میکنه بعضی کساس یکه آنوانا چوبه کم میگیرن در پای وشتک بسته میکنن میگه چوب بالابردار بردار عزیز او را خداوند افس کنه خوب است یا چوب بعضی کساس تکیه سر خویزان میکنه میگه ای تکه نظر از این تعمیر دور میکنه پس به خدا خانه خود تسلیم نکرد بچه تسلیم کر؟ بدت کرد. بدت کرد از این خاطر انسان انسان مسلمان باید همیشه معبود خدا بشنه که الله جل جلو و بغیر از او به هیچ کس صلاحیت نه که یا بر ما سهد بته یا مرا را به خدا نزدیک بسازه یا مرا را شفا بته یا مرا را جور بکنه یا مشکل مرا را حل بکنه چون ما و شما مسلمان هم میفهمیم که خدا ما کی الله جا بیشه انشاءالله فامین درسته اینا مثلا وقتی که تو میگی که اینی پیر ماس ای بر ما گفته که تو گوشت نخور خداوند گفته گوشت گوسفند بخور ایل پیر ما چی شد خوانمس لونا میتاخدو احبارهم و رهبانهم احبار علما رهبان پیرای خدا چی گرفتن خدای خود گرفتن دیگه خدا میگه گوشت گوسفند کاو بخو آمد. تو میگه پیرم میگه نخور پس پیر چی گرفتی؟ معبود خود گرفتی معبود باطل چی شد؟ تشریعی چی شد؟ تشریعی از این نه پیر حق داره و نه جوان نه پیر حق داره که بر کس گشت حرام بسازن و نه جوان وقتی خداوند گفته گشت خوک حرام است. حرام است تا روز قیامت و گفته گشت گزفند حلال است. حلال است تا چه وقت تا روز قیامت خدا حافظ کلتون